از در دایمت ها نهده باید بچنه را جمید در وقت خودجیت زواهی روایاتی رو که آخرین آخری روایت حدیثی بود از عمیر سلام الله علیه که از خیلیم حدیث در باقی خودش منحصره به فرده به لحاظ این که همین تقسیم فرمودن اقسام آیات رو سه برسم کردن و تو اونجایی که ما میدونیم ولی علم و ما به این حدیث رو تعلن غیب از کتاب احتجاج مربون تبرسی نداریم و خیلی واقعا حدیث نورانی سوه اینکه بله به لحاظ سندی خیلی مشکل داره و نشون میده که از همون اوائل از زمان صحابه محسن امیور مهمونی که بالا بازلیقی مباحثه کردن بحث برخورد با قرآن و کیفیت استظهار از آیات قرآن رو حضرت مفرح فرمیدن از که این کتاب فعلا مرسل کتاب به اصطلاح احتجاج لیکن من حیث المجموع صاحب احتجاج از تقریبا جزیل مدرسه گرا حساب میشه یعنی ایشون حاله به حجت خبر فعبدی خبر نیست و در مقدمه کتاب هم ادعا فرمدن روایداتی که آوردن مجموعان علیه هستی مقدمه کتاب احتجاج انصاف این و از این قبل در عبارت مجمان علیه ها این متلققات به قبول قبل متعقل نه این شما. و این نشون میده که ما واقعا چقدر زخف مستح داریم یعنی از زمان امیر المؤمنی در نیمه های اول قرن از وقت تا این قرن ششم مرحوم تبرسی نخیر نه خیلی نه اگه احمد ابن علی در کتاب عوال الله علی خیال کدیشون صاحب مجموعه ایشون شخص دیگری هم احمد ابن علی تبرسی خیلی هست همینه و اسلام تبرسی صاحب مجموع بیان نیستش. ارز کنم که انصافا کتاب من حیث المجموع کتاب خوبیه همینطوری خودشم ایشون گفته. بس علی الاجمال، لیکن خب خیلی انفراد داره. یعنی مصالبی داره که جای دیگه نیست. و این نشون میده که خیلی از مصادر ما انصافا تلف شده. یعنی خیلی برای انسان درد آور است که مثلا این مطلب بین لشکندی حدیث به این زیبایی رو امیرالمومنین. البته در میان صحابه هم توقعمون همین بود که این مطلب از امیرالمومنین باشه. از هستیام توقع نداریم. توقع مطلب از امیرالمومینه. علایان یعنی به هر این دو سه حدیث رو ایشون از کتاب احتجاج تبرسی نقل کرده حدیث چهلو سه و چهلو چهار و و پنج اون دو حدیث اول ایشون منترگن در مسئله دیگه پیدا نیشه چهلو سلو چهلو چهلو چهار پنج در مسئله دیگه هست اما این که ایشان آیات الاحکام رو از قبیل قسم سرمون در کلام اندرمونی قرار داد خیلی بریده این صافر. اشکال اشکاله مرحوم آقای شعرانی در خایشه نمیشتن دیگه حالا خایشه ایشون بخون در بخوندن نظره انصافا اشکال وارده و عبارت خود مرحوم شیخ فور و نسخفی ها کسی اون جدن اینم این هم خیلی عجیبه مگر اینکه مراد از نفت همون تخصیص باشه که دیروز هم توضیح داده شده الانصافا خیلی عجیب حدیث شماره 45 رو ایشون مرسلن مرحوم احتجاج موسفن ققبه نقل کرده احتمال داره یا حالا با یا مستقیم یا غیر مستقیم کتاب موسفن ققبه پیش ایشان بوده چون این حدیث در مسادر قبل از احتجاج موجوده که در اون مسادر این قصه به امام حسن نسبت داده شده این خیلی دقت بفرمایی مثلا ممکنه به کسی بگه خب این مثلا اولا اسم موسطن اقوه در اون سند نیست در مسادری که قبل از مرحوم احتجاجه اسم موسطن اقوه نیست و اون قسطه رو هم ایشون نصراد به امام حسن داده و اما در کتاب احتجاج این قسطه رو نصراد به امام حسن صحان الله علیه خود موسطن کتابی در مغازی داره در قدوات رسول داره جوزه تقریبا اولین کسا نیست که این کتاب مغازی رو نوشته و آمه هم توصیل داشتم پیش سونیان احتمال داره که ایشان همون کتاب مغازی موسف بن پیچه شده مستقیم از اون نقل کرده احتمال داره ارحال در کتاب کشف داره که مغازی موسف نقوه من احسا هل مغازی بجازه میشه برده بجازه می از احس سنته ولیکن حدیثش حدیث قشنگیه یعنی مرتب امن معاویه امر الحسین سمان الله علیه برای موسیقی عقبه زمان امام صادر سال 141 وقت نمیتونه نمیتونه هم که فسته رو نقل بکنه باید واسطه داشته باشه از بعضی از صحابه نقل کرده اما اینجا از معاویه انا بعیده امر الحسین علیه السلام عنیت من علی منبر فیحتو فحمد الله و عصن علیه سنقا. سنه نه الغالبون و اثر رسوله یا نبيه الاقربون لا احد خلان الذين جعلنا رسول الله صلى الله عليه واله ثاني كتاب الله فيه تفصيل لكل شيء راجبه كتاب الله لا يفيه الباطلون بين يديه لو في تفصیل. رو باید از ما گرفت لا نتونا تعویله با به تفعول از زن ما در تعویلش به زن و بمانه حفظ مراجعه نمی کنیم بل نتبه و او البته این روایت از کردن در کتاب دیگری هم آمده یک مقداری با هم دیگه فرق داره. مثلا بل نتبه در اون مستر بل نخیق کنیم حقائقه دیگه من همیشه نگفتم یکی رو خوندم تا بقیه شعا نگه خواستن مراجعه کنیم ساعتی اونا فئن ساعتنا محفوظه به دفات الله و رسولی محرومه قال الله تعالی اعتی الله و اعتی رسول و لعن منكم و این خیلی لطیفه این آیه از این جهته که حضرت اول ال امر رو میخونن جلو معاویه و به خودشون تعبیر میکنن میخوام میگن مراد از اول ال امر اون جهت سیاسی و تضدیع سیاسی نیست این تنازعتون میشه انترو دوره الله و رسول رقال رو را دو رسول من هم علعلم اون الذيین هستن بتونونه هم بنومون.هیش تو خوبه یعنی ق به لا مشکل داره این خراد اج هم بشینی انصافاً تا حدی فکر می هم مسلرش هم واضر باشه لکن مضمونش مضمون به بحث حجزت زوار نداره. ممسر دیگری که داریم که این تقریبا یک معنای مثر صاحب احتجاجه مرموم تبریفی بشارت المصطفى چاپ شده که دارم بشارت المصطفى لشیعت المرتضا در کتاب تبری اگر آلین کتاب وسایل چاپ جهد هر اونجا داره انال حسند ابن حسین ابن بابره همینطوره استاد ایشان امام ظاهر الفقیه تحبیر کرده اینجا داره انشیف المفید اونجا چی داره؟ بشارت مصطفى انا شيخ المفيد. اه اشتباه. اشتباه. شاید شیخ طوسی، انا شیخ المفید. این حسن رازی، اصولا در کتاب فهرست منتجب الدین، آنی که بعضی از نکات تاریخی میخوام چون این منتجه از این خاندان بابلی به استرام. ایشون شاید در ابتدا فکر من ببین 15 تا 20 سال متعدد از خاندان باوی اسم ورده تا اونجایی که من یادم میاد هیچ کدومشون که شیخ محمدی در خاندان هستند چون شیخ محمد خیلی بااثر و بد بوده اما معظنشون یا همشون شاگرد شیخ توسی هست پیش شیخ توسی هر. مفید هستند اما پیش شیخ توسی را. به هر حال این روایت در کتاب بشارت المصطفى ابن الحسن بن حسین بن باوی عن شیخ طوسی سم این ها به نجف سنه 455 این نشون میده بعد از هجرات شیخ به نجف این آقایی که از خاندان باقوه خدمتیشون رسیده شیخ 449 آخر 9 اگه این 450 وارد نجف میشن از بعضا وارد نجف میشن پس این 5 سال بعد از وروز مرمون شیخ به نجف و من, من یه توضیحی رو چند بار عرض کردم در ذهن آن را چوندم بعضی جور دیگه نوشتم شیخ توصی کلیه آثاری که ما الان از شیخ همه مال کار بغداده چلیه که سالیشون بغداد بوده. یه چیز مختصری شاید توی راه که می آمدن از توس تا بغداد از بعضی مشایخ شده باشم خیلی مختصره یه حالا جایش هم نیزیده توضیح بدم چون خیلی بزرگان هم توجه نگرم عمده کاریشون 488 که بغداد می میشه تا آخر 489 این حالا از می شون زیهجه مثل این ایان زیهجه یه اون رو به چارسد پنجاه دادن زیهجه چارسد چلنوه بر برمیرن به طرف بغداد نجف این چهره یک سال کل آثار شهر توسیمان این چهره یک ساله از اجازات هست افراد مثل ایشون اجازات داره از شهر توسیمان نجفه تحلیف آثار در بغداده اجازات در نجفه اشتباه نجید در منظر از ایشون ما دو تا ازثر بیشتر سوال نداره یک علی ایشانه همطور مثل ای که فراس بنده بالا صنده نشستد میشستن تا حیثی می خوونن می نوشتن یکی عمالیش اینمال نظربه. یک ای کم تلخیص کتاب کشی این دوتا فر نظره. این هم اصلکنم کرار هست که در این نسخه کشی الان نومده این مل این کتاب کشی چون بعضی دوستان بعد از درمن سوال میکنن این کتاب کششی نکماده. یه مقدمهی برای کتاب کشی مرموم سیدم تا روز که از کتاباش نه کنه تو اون مقدمه آمده اون مقدمه هم با یه کتاب کشی چاپ نشده شاید که مثلا آقای توستری عبرده در مقدمه آموز اما با خود رجال کشی این کشی کران موجوده با رجال کشی مقدمه چاپ نشده حدود نیم سر پرسازه یه مقدمه ایست مرموم شیف توسی در, مرم، در اول رجال کشی نمشته که این مقدمه در نسخه مرموم سه هست اونجا میگه که در نجب این کار ایشون، سالهای نجب این کاره کردن یک اشتباهی کده ایشون اجازات در نجب زیاد داره، اما تعلیف نداره اشتباه نشه پس از توست تا مقدار من که بیشتر از دو مورد پیدا نکردم که خیلی هم تفصیلی برکی جا چینجا نیست و در بغداد تمام کارهای ایشان مال بغداده و احتمالا این احتمال پیش شما قویه که ادهی از این تعلیفات رو شیخ به اصطلاح ما به صورت مفتور یا اوپه می بوده مثلا رجال دفتری بوده هی زرس می تنظیم نهایی نشده رجالیشون شایداره فهرسو ازش بهتر باشه احتمالا بعض از ایشان تنظیم نهایی نشده بوده بنا داشتم تدریجا ای اضافات میکنم ای, ای تکمیل بشه. و چون به نجم ساموشرفشان دیگه نشد این خلصت تکمیل بر ایشان دست ندار در حال حسن ابن حسین ابن بابوه الان هم دقیقا بخوایم بگیم دیگه بگی بگی از همه خاندان دقیقا الان تو زهن هم نیست که نبی صدوبه نبی برادر صدوبه انشیخ المفید انل حسین ابن محمد الانباری اونجا هم همینطور د در خیلیه این چطور شده اشتباه کرده اسمایل با حسین او هم با اسمایل خیلی کم اشتباه میشه علایه که در کتاب به مصطفی آمده البته نمیدونم اینه مخیرم اضافه کنیم این حدیث بسنان تو اعمالی شیخ مفید هم هست سال صاحب سال از اعمالی استخراج نکرد اگر آن ماید اعمال نگاه بکنن صفحه تو خود عمالی شیخ مفید آمده این حدیث به شا از این طریقشه به کتاب عمالی شیخ مفید قرر فرمودید این دو وزرگاه طریق ایشان به کتاب امالی این حدیث ولذا اگر من دو سری قبل عرض کردم که قبل از صاحب احتجاج مراد من از قبل صاحب احتجاج این شیخ مفید نه مرادم به شا از مصطفی شیخ مفید این رو در امالی آورده این قبلش مرحوم به صاحب احتجاج ان ابل قاسم اسمایل ابن محمد ان ابراهیم ابن محمد العزوی این ها شای... دیگه از مشایخ سنی مرموم شیخ ام... این داره مرموم مفید در خیلی از مطالبش حتی مطالب تاریخی به مساده را عامه مراجعه کرده خود من هم هنوز یک تحلیل درست حسابی در این مطلب ندارم فرصی این در که تواریخ انمه علیه مسلامه مثلا ارشاد در بخش از زهرا ایشون اون که آورده از مصادر عامه است یا در مثلا تاریخ خری و خیلی از مصادر عامه شیخ نقل کرده و از عجایب اینه که مثلا این کتاب کافی حالا قبل شیخ موقیده خیلی عجیبه از اونجا کم نقل میکنه این برای ما هنوز روشن نیست خیلی مطالب رو ایشون برگردونده به عامه از سونیا نقل میکنه حالا محیط بغداد بوده اصلا کتاب رو نخاطه یکی بینیست که سنیان اعتراض نکنه نمی فهمیم در ما روشن نیست این شعید ابن عیوب اینا مذهب اونا هست این معایت ابن حشام ابن حسان این یکی خبیه خیلی معروض صوفیان صوفی معروف که از بزرگان امه حدیث پیش اهل سنت خیلی معروض امیر المومین حدیثه در حدیث خیلی هم شخصیت معنوی علمی توی زاهد و عرفا و صوفیان اسمش برده شده توی محدثین و فقها و خیلی فوق العاده به اصطلاح امروزی هم مضادفی نظام بود رو در حال تفتش فوت کرد چون دستگاه دنبالش بود که او رو بگیرن فکر می‌کنم از زمان منصور دوانی کهشون شروع مخالفت کرد زمان مهدی یا زمان هارون هارون فکر نمی‌کنم رسید. قاضی عباسی در حال اختفا شون فرص میکنه جزای معارضین بنی عباس هم هست انه شام بن عباس القردوسی اگر من این چون تو حاشی خودا اگه درست درست نوشتو باشم اینشون داره قال سمع تا عبا محمد علی حسن بن علی علیه السلام یک توب ناس دل بیعتله فقال اینی که از احتجاج از این مصدر قبلی گرفته چون خیلی با اون فرق میکنه اونجا داشت که این معاویه امرال حسین انیخت و رضا حضرت مطلب رو فرمون اینجا میگه که نه این کلام مال حسن ابن علی سامولالی در کوفه بعد از شهادت امیر و که میخواستن به یعفت حضرت بگیرن حضرت این خطفه رو در کوفه انجام دادن پس یک معنا باز کلام احتجاج انفرادی اما خب چون مصدرش گفته احتمالا اشکال در مصدرش کشته این هم راجع به تحلیل این حدیث و بداهاد آخر سند خوبه اما اول سند خیلی وزید از نظر خب تا اینجا روشن شد که مرهوم صاحب وسایل دسترندی کرده الان کتاب احتجاج هم تمام شد از این شماره چلوشیش مرهوم صاحب وسایل عبدالسل داغ نفسه از مرهوم تفار از کتاب وسائل رو درجات نرمی از حدیث چه به دیگه مستر رو نمی توضیح بدیم تا حدیث 58 هش یعنی تا حدیث 57 هش تماماً از بسائره تقدر فرموزید؟ و چون بسائر قبل از شیخ کلینی بوده یه مقدار از احادیثش در همین کتاب کافی هم روچه بودش که من در اول بحث ارز کردم بعضیاش تکراریه شون شماره بشده اما در حقیقت تکراریه این به این نکته بود از کتاب بسار در جا نکته بر شیخ کلینی در اذه از اسانید از محمد بن حسن نقل میکنه محل بحث بین بعض رساله نشدن که این محمد بن حسن شا صفار باشه بعید می‌خوره از صفار نعرو کنه اون محمد بن حسن قمی که هم طبقه صفاره و صفار نیست اون شخص چیز الان که که ما آقا مرحوم کتاب معروفی به نام بساره رو درجات داره این کتاب نیاز به یک شرح خاص خودش داره جایش فیلن اینجا نیست جای دیگه ایشون ان محمد بن الحسین که محمد بن الحسین نرد خطاب صفحه هم از مشارک قوم نرد هم از مشارف کوفه احتمالا ایشون به کوفه سفر کرده برای طلبه و اجمالا حالا من توضیحاتشو با جدیه از رو کنم جلالت ایشان. جای بحث نیست متفقانه علیه ولی که این کتاب و کتاب های خوبی هم داره خیلی کتاب داره از اجایر بیده که اصحاب ما مثل کلینی از این کتاب خیلی کم کن نقل کنه اینوشه گفت نقل نگرده و که از الیک مرحوم شیخ صدوق قد از الله حساب کسی که بیشتر از سفار نقل کرده مرحوم شیخ توسیز در کتاب تحضیب استفسار زیاد از سفار نه یعنی اگر این بزرگ نبود آثار سخفار فعلا در مساجر فقیل و نرسیده چون اینجا خیلی الان اثر نداره یک جایی که اثر داشته باشه اینشالله اونجا متعرضه حال ایشان و وزی کتاب ایشان ایشالله خالد ابن این نظر ابن شعید در اینجا داره که نمیشناسیم احتمال هم داره که نظر ابن سوید باشه احتمالش از اما اونم افیلان نداره ان عبی حالا نسلشون خلافه بوده که دراز بوده می‌خوشه. الان چون خلاف روش شده به شرطی که آن ابی داوود، این ابی داوود ظاهرا از مشايخ آمده باشه. از اینجا سند به آمده ان آن انصر نماله، این انصر هم همون که معروف بوده خادم رسول الله، قال قال رسول الله، صلّى الله عليه و آله و سلم، یا علیه، آن تعلم تعلّم الناس تأويل القرآن. به ما لا یعلمون فقال علام ما ابلغ و, و که من بعد که یا رسول الله آن تقویر الناس ناس به مایوش یشکل و علیهم من تعدیل القرآن از وقت حدیث شواهد پرابان داره این که امیر مامونین رو آشنا بودن و تعلیم میکنن جای بس نیست اما یه دفتی وقت حجت زواهر نداره حدیث چماره 47 باز هم از همون بسائر ان احمدت محمد این احمدت محمد ظاهرم باید اشعری باشه که از اجلا اصحاب. ان البرقی ظاهرم باید برقی پدر باشه ظاهرم وقت ان المرزبان امران الاشعری احتمال میدم احمدت محمد برقی باشه از مرزبان قیده چون. برقی افتدار بیشتر میراث کوفه رو نحره کرده این مرزبان ابن از اهل اشاری قومه به نظر هم سند یه خرابی داره یا یعنی برقی ول مرضوان یه چیزی باید توش خراب باشه به نظره به چون بعید برقی که اهل کوفه بوده بیاد از این اشاری قومی نحره بکنه احتمال داره برحال مرضوان ابن امران مرضوان هم لفظ فارسی هم هست بله حافظ و شغ منظومات عمران اشعری قمیشون شاید خیلی بریده من ابن اسحاق نه عماد اینم خیلی مگر اینکه ایشون آمده کوفه کتاب اسحاق رو در قم به برقی داده باشه میگم ممکن هست میگم محاله صاف نیست یعنی آدم کیف بکنه که صاف صاف باشه نیست قال سمعت ابو عبدالله الله سند الان مشکل نداره سندش صحیح این للقرآن تعویل هم و من هم مواقع جا و من هم از در همین اوائل بحث گاهی تعویل به این معنا در مقابل تفسیر تعویل به معنای انقباق یعنی مثلا, مثلا این انقباق در زمان ما پسیم مثلا پسیم به سری یا آمریکا، این انقباق که مراد از اون آیه در زمان ما اینه این اسمش یک معنای تعویل اینه فلضا فرمون سمن هم همه جا و منو همه ما بعضی از تعویل ها واقع شده بعضی ها واقع نشده اون نکته مهم اینه که وقع از تعویل فی زمان امامان من العمه عرفه او امامو یا عرفه او امامو لالک زمان اشاره محال می فرمانی که هر کسی حق نداره بیرد بگی این مثلا آیون وارکه تعویلش و این که الان حرکت داشت به فلانیه این نمیتونه بکنه تعویل شن امامه غیر امام نمیتونه حدیث این حدیث انداشت خوب بود اما یک کمی مشکل تاریخی داشت حدیث شماره 48 و انهو این زنی را انهو به احمد برمیگرد این باز بسار و درجات انه احمد ان که از اجل‌لای اصحاب، آن حماد بن ایساع، از اجلاس آن ابراهیم بن امر اليامانی، آنها علیه السلام از صفات ظهر. فرند ان که در قرآن ما مذا و ما یهود و ما هو اند. و کانه فیه اسم‌ها و رجال فاول روایت دیگه هم داریم بیاریم که ادی. البته این رجال نیکلاتان و سعی کنیم فلان شخص ما ایاموشه. از طوری که بعضی از روایات داره که ما عد از اهل مکه و مشکین در قرآن بود همه را هست کردن به خاطر انعادبار رسول الله اسم عاب ح را باشد تو الان تو مشکین بر قبول عرث میشهد تبدیه دو غ وتر چون اموی پیم بر بود و بر اینکه اانت به الله را بکن نام اموز نگذاشتم نگهم ب ما رو حرف کرد. این عمل اسم الواحد که وجود لا تخصا یه و ذالکه الوساد سات اهل راسته یعنی ممکن است که این عمل اصم الواحد یا شاید مانه لحظه واحد باشه کلام ممکن است معانی متعدد بیلا بکنه و اون وسیع رسول الله که میتونه اون رو بشناسه حدیث باز رفتیم به ما نحنفی نازم حدیث 49 ان محمد ابن حسین ان محمد ابن اسماعی که ظاهر ان به وضیع باشه ان منصور ابن یونوس که خوبه ان ابن عزینه البسیشون واقفیه انه ابن عزینه که از اجلای اصحابه انه خوزیل ابن یسار قاله لکه سند خوبه حال سلط و عواجهتر انهاد روایه الان من به عنوان روایت یادم نمیاد که ان رسول الله این رو نرکرده باشن این منوش سلط و عواجهت انهاد روایه یه مطمی مربی بوده مامل قرآن آیتونه الا ولها زهرون و بخنون صحان علی اقوال زهره و و تعبیر رو چه عجیبه از صدر سوال عجیبه هم کما به امام عجیبه ما خیال میکردیم مثلا تعبیر بحث باشه تعبیر اینه زهره و بحث و تعبیر بود حالا صاحبها این جدا ورده که حتی ظاهر قرآن هم ظاهر قران هم تعبیره صاحبها الله اکبر علی ابو روایت الان یه جوری نمیکنه زهره و بحث دیگه ما من ها دیگه من من الان اینجا هست این طوره بله احتمال داره چیزی شده مسئله داره ما بله بله بله تنزیله و بله این معلوم معقوله به الله انصافا معنی درستی الان نداره و معلوم میشه نکته خرابی داشته یا خود کتاب به چاپ ما قرار و منهو محاقت مزا این منهو باید تعویل باید باشه یکری کما تجری شمس و القمر دیروزم تو بحث مکاسب از فرم هست این همین روایت ده تجری کما تجری شمس و کل ما جا تعویل و شیئن اینجا هم تو که در نسخه ما هست کلما متصل نوشته میشه و به منصوب و مبنی بر ترکه کلما کلما که متصل نوشته میشه جز عدات تقریبا اوله اول منتجار صورت کلی است کلم ما جاء تعویل و شیء یکون علل انباض کما یکون علل احیا قال الله تعالی ما يعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم نحن نعلم این آیون ورقی اما انصافاً ارکان رفت میونه کلم کما هم و کما جاءت کلم ما بهتر بشه و محمد بن عبدالجبار که از اجلای اصحاب ان محمد بن اسماعیل مثل سندش خوبه ما از کردم با عنوان یک روایت قرار داده یک مقداری روشن نیم در این کتاب ما داره که و محمد بن الحسین انا ابیه اونجا در حاشیه نوشتن حاشیه حدیث 51 نداره چیزی نه ببخشید حدیث 50 رو بکنیم بعد دارو ان پس خاطی جو شاید اینجا ایشون دقت نه بله چرا دیگه محمد نه تا محمد نذر جبارش متفاوته بقیه شکیه این که ایشون نوشته راستیه راستی با این طاس پاراست. ما صاحب وسائل یه متن اورده متن دیگه هم مثل اونه. اینی که شما میگی تنزیلو در یک نسخه، در یک سنده. در اون سندی که توسط محمد بن جباره در اون سندی که محمد بن نه، یکی. الان این روایت در هر دو سندش معتبره اما گیر داریم که دقیقا چیه رو. حدیث کمالی پنجای ها در مرکلون بکنیم و عن الفضل مرحوم سفار فضل ابن آمر سقه تون عن ان موسفن القاسم بجلی، عن ابن عمر اینجا اینطور داره بعد اون باز سخت داره بله اینجا باز باز سخت چرا سال و سال احتمال داره نسخه بسائر ایشون خراب بوده ان ابان که ابان ابن عثمان باشه ان ابن عبی عمر اغیرهی ان جمیل ابن دراج به خاطر اغیرهی ارسال پیدا نکنیم بعیدم از ابن عمر باشه ابان از اون بعیده ان جمیل ابن دراج ان زراره ان عفی جعفر علیه ازتران قال تفسیر القرآن على سبب اوجه من همارم هم یکون بعدو تعرف حلعیمه اینجا تعبیر به تفسیر شده اونجا تأویر به تأویر تعویل دقیقتر تا تفسیر. که توضیح سابقا گفته حدیث شماره پنجه اینا یک اینها هم رفتیم و ندارن بده تبرک حدیث در خونده میشه حدیث شماره پنجه یک چی داره در اونجا پنجه و یک؟ محمد نلحسی محمد نلحسی هاشیه چی داره؟ هاشیه داره احمد بله هم همینه. در کتاب فعلی آمده محمد ابن حسین عبی این غلط است احمد ابن حسین در جلساتی من صحبت کردم نه سازویه خیلی بعد ممکن آد نشینده باشم این احمد پسر حسین ابن سعیبه این محمد ابن سعیب است احمد ابن حسین احمد پسر حسین سعید، چون مقروم حسین سعیب در عواخه با اون منتقل به قوم میشن خودشون ساکن احواز بزن بعد منتقل به غم میشن لقوم فوت میکنن احمد هم جزه مشاعر خوب حساب میشه و شخصیت علمی بزرگیست احمد حتی همه امن مشاعر حبی الا یک نفر یعنی غرض یک شخصیت علمی بزرگیست متاسفانه احادیس او کم الان موجوده از سرات احمد احمد ابن حسین ایشان متهم است به مذاهر پاسده که ما احتمال داریم که دیگه نهیدی محروم نجاشی میگه مذاهر پاسده احتمال در این با همین نو های شام ارتباط داشته ایشون ولی نه قله شیعه، شاید با اسماعیلی‌ها، مذهب خاصه، ولی به قلب میخوره اما احتمالاً با یک نوع گروه سیاسی همراه بوده. علیه اله حال شخصیت علمی بزرگی است اما به خاطر بعضی از این جهات سیاسی یا بی سیاسی یا اهوایدی ایشان نسبتاً مرخوزه، یعنی خیلی روابط زیاد نیست، خیلی خمه. هست اصلا فقط ممکن چل پنجاز در مجموعه مسادره ما یه چیزی بیشتر کرده نصال به شخصیتش و نصال شخصیت, شخصیت پدرش اونقرد جا نیفتده این عوی که این حسین سعیده معروفه این بکر ابن سالحیشون تضییف شده این عبدالله ابن ابراهیم جعفری که از اولاد جعفر تیاره این یعقوب ابن جعفر اینم احتمالاً از همونها باشه از اولاد جعفر شاید هم شاید هم برادر حضرت باشه یعنی بگفت برادر یعقوب پسر امام صادیتون پسری به این نام نام دارن قاله کنتو من عبدالحسن علیه السلام مراد موسیقی جفر به مکه فقال له قائلون این مکه من کتاب الله مالم تسمع فقال عبدالحسن علیه السلام علینا نزل قبلا ناس و لنا قصره قد يعني و فسره قد ناس فنهنوا نعلمو حلاله و حرامه و ناسخه و منسوخه و متفرقه و خطيرته این در کتاب موجود و سفریه و حذریه به نسبت این درست باشه و سفریه و حذریه کدام آیات در سفر گذاشتن کدام آیات در حذر و فی ای ی نزلت من آیه و فی من نزلت فنحنو حکمالله فی عرضه خوب حدیث برد نیتون حله دستند اما حدیث حدیث خوبیه و دلالت بر مقام امام می کنه به خود که فهمدن از جمله احادیث شماره پنجه دیگه تماش شده, شده ها و انه و ظاهر انه به محمد ابن حسین برمی‌گرده اما که ایشونو ذکر خیلی بعیده. احتمال می‌دم، احتمال می‌رم این همون سند باشه. این جوری باشه. ان عبیه یعنی حسین بن سعید ان بکر بن صالح اونم ان عبد الله اینجا باز عبد ابن بن مثلا یه چیزی در اون سند قبلی از وای به نحس باشه. بعیده سفار باید باز. آناللہ عزّ و علیہم قال <سؤال> تمامشو یقول: اینالقرآن کیه مکم و مشابه، فعمل مکم فنؤمن او به و نعمل به و ندیم الله به، عمل مشابه فنؤمن به ولا نعمل به، و هوک الله عزّ و علیه عمل زینی فی اولو بهم زیرو، خی استعوان مشابه منه ابراهیم ابراهیم. این صحن معلوم حدیث خیلی روشنی است. احتمالا مراد از محکم منسوخ با... ناسخ باشه مراد از متشابه ناسخ منسوخ باشه اه... که ظاهران این باشه مراد از طور باشه و الا خیلی مرحوم حدیث واضح نیست و, و صلی الله علیه محمد ناسخ